دوستان خوبم به دانشکده کوچای که کتاب مقدس خوش اومدین. این دوره دوری مقدماتی بررسی کل کتاب مقدس هست. در نود جلسه ما عهد قدیم رو بررسی کردیم و بسیاری از شما با ما همراه بودین. اخیرا ما شروع به بررسی کتاب های عهد جدید کردیم و از شما دعوت میکنیم که عضوی از کلاس ما باشین و در مطالعه مهمترین کتاب دنیا با ما همراه باشین. امروز ما خواهیم دید که چطور مسیح امتحان شد و به همه ثابت کرد که او نه تنها قادر ما رو نجات بده بلکه قادر ما رو حفظ کنه با هم به درس امروز معلممون گوش می‌کنیم به دانشکده کوچک کتاب مقدس خوش آمدید در این جلسه قصد دارم که بزرگترین نبی دنیا و بزرگترین مردی رو که تاکنون دنیا به خودش دیده به شما معرفی کنم گوش کنید عهد جدید این مرد بزرگ رو اینطور به ما معرفی میکنه در آن زمان یحیای تعمید دهنده در بیابان یهودیه ظاهر شد و تعلیم داده میگفت تو بکنید زیرا پادشاهی آسمان نزدیک است یحیا همون کسی هست که اشعیا نبی درباره او میگوید مردی در بیابان فریاد میزند راه خداوند را آماده سازید و مسیر او را راست گردانید لباس یحیا از پشم شتر بود و کمربندی چرمی به کمر داشت. خوراکش ملخ و اصل صحرایی بود. مردم از اورشلیم و تمام یهودیه و نواحی رود اردن پیش او می‌آمدند. به گناهان خود اعتراف میکردند و در رود اردن از او تعمید میگرفتند. وقتی یحییادید بسیاری از فریسیان و صدوقیان برای تعمید آمدهاند به آنان گفت ای مارها، چه کسی شما را آگاه کرد تا از غضب آینده بگریزید؟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 هیچ شخصیتی در کتاب مقدس وجود نداره که مهمتر از او باشه و با این حال فضای بسیار کمی در کتاب مقدس به او اختصاص داده شده این مرد یحیای تعمید دهنده هست عیسی گفت این مرد بزرگترین مرد و بزرگترین نبیه که تا کنون از زنی به دنیا آمده به نظر شما که در بررسی احت قدیم با ما همراه بودید و انبیارو با هم بررسی کردیم فکر می کنید کدام یک از انبیا بزرگترین اونها بود من فکر میکردم موسی بزرگترین اونها بود چون تمامی انبیا چیزی رو موزه کردند که موسی نوشته بود به هر حال وقتی من عهد جدید رو خوندم و بیشتر تعلیم گرفتم خودم رو سرزنش کردم چون جواب این سوال رو در عهد جدید پیدا کردم عیسی گفته این مرد یحیای تعمید دهنده بزرگترین انبیا بوده به قولی اقتدار او کمتر از عیسی مسیح نبود زندگی یحیای تعمید دهنده به صورت خیلی خلاصه در چهار انجیل چرت داده شده اهمیت زندگی او در چی بود اولا یحیای تعمید دهنده نه تنها بزرگترین انبیا بود بلکه آخرین اونها هم بود نبی بود که می کرد مسیح میآید یحیای تعمید دهنده عملا به مردی اشاره میکنه که در جاده خاکی جایی که امروزه بهش سرزمین مقدس میگیم در حال آمدن هست. میگه این است بر خدا که گناه از جهان بر میگیرد. تعمید دهنده عملا به مسیح شاره کرد و گفت این مسیحه همون کسی که انبیا در بارش به شما گفتند. یهیای تعمید دهنده آخرین نبی مسیحایی بود که به طور عملی مسیح رو به قوم خدا معرفی کرد. یحیای تعمید دهنده همینطور از این لحاظ بزرگترین انبیا بود که به لحاظ معزه هم بزرگترین نبی در بین انبیا بود قبل از اینکه یک واعظ بزرگ مثل بلیگراهام به شهر شما بیاد شما باید به او نشون بدید که یک محل عمومی دارید و مردم برای شنیدن معزه او به آنجا خواهند آمد اون واعظ شاید دو سال قبل از آمدنش به شهر شما کسانی رو در شهر شما داشته باشه که مقدمات گرد همایی او رو انجام بدن و تضمین کنن. جالبترین چیز در مورد بزرگترین وایز تعمید تعمیددهنده این بود. تعمید تعمیددهنده به یک سالن اجتماعات نرفت. او به بیابانی در جنوب اورشلیم رفت. اگر امروزه به اورشلیم سفر کنید، در فاصله چهار ساعتی به طرف جنوب اورشلیم، ممکن راهنمای سفر شما به طرف اردن اشاره کنه و بگه تعمید تعمیددهنده اونجا موعظه کرد در هر چهار انجیل می خونیم که تمام مردم اورشلیم و یهودیه حداقل دو روز پیاده راه می رفتن تا به موعظه های این مرد گوش بدن یک عیسی از اون مردم پرسید چرا این کار می کنید؟ چرا شما کتابخانه ها و تومارها و صدوقیان و فریسیان رو رها می کنید و میرید که موعظه های این مرد را گوش کنید انتظار دارید اونجا چی ببینید برای دیدن یک نای که در باد در جنبش است می روید یا یک نبی؟ آری به شما میگویم او کسیه که از پیامبر نیز برتر هست. آیا میتونید تصور کنید یک واعظ بتونه چنان معزهی بکنه که تمامی جمعیت شهر شما برای شنیدن معزه او به بیرون از شهر برند؟ واعظی که بیرون در بیابون بمونه و تمامی مردم برای شنیدن او به بیابون برند؟ چنین واعظی باید العاده ای باشه. یحیای تعمید دهنده چون این بود. یحیای تعمید دهنده مرد مردان بود. او قوی و خشن بود. او وقتی کارش رو تموم کرد، سی و یک سال و نیم سن داشت. پس او مرد جوانی بود. او باید واعز خارقلادهی بوده باشه. او سینه پشمالو داشت و پوست حیوانات رو بتن می کرد. اگر مردم در واکنش به معزه شبانشون بگن، من از شنیدن معزه شما، در یک سال گذشته تحت تاثیر قرار گرفتم، دلم میخواد که منو تعمید بدید، من میخوام که عضو کلیسای شما بشم، فکر میکنید چند نفر از واعظین رو به چنین شخصی میکنند و میگن ای افعی زادگان، چه کسی به شما هشدار داد تا از غذبی که در پیشه است بگریزید؟ یهیای تعمید دهنده چون بود. خدا به یحی تعمید دهنده معرفی مسیح رو داد. معموریتش تنها این نبود که به عیسی اشاره کنه و بگه این بره خداست او داشت راه آمدن مسیح را آماده می کرد. درست مثل اینکه که داشت شاه راهی آماده می کرد که مسیح توسط اون وارد بشه این وظیفه و معموریت یهیه تعمیددهنده بود این دقیقا کاری بود که یهیه تعمیددهنده انجام داد یکی از نشانه های بزرگ او این بود که وقتی مسیح آمد یحیا گفت این جایی کار من تموم میشه و کار او شروع میشه یحیای تعمید دهنده مردم رو به چیزی تعمید میداد که به اون تعمید توبه میگفتند و در انتهای انجیل مطا میبینیم که واقعا شبیه تعمید امروزی نبود وقتی عیسی در انتهای انجیل متا فرمان معمولیت بزرگ رو میده رسولان رو موظف میکنه که مردم رو تعمید بدند این تعمید مثل تعمیدی نبود که یحیی میداد یهو یعقوب تعمید دهنده اینطور موعظه میکرد توبه کنید زیرا پادشاهی آسمان نزدیک شده است وقتی مردم توبه میکردند یحیی آنها رو تعمید میداد یحیی مردی بود که نقشی رو ایفا میکرد و اون نقش وقتی عیسی اومد به پایان رسید حالا وقتی عیسی ظاهر میشه یحیای تعمید دهنده حدود یک سال داشت یحیای تعمید دهنده بزرگترین نبی و بزرگترین مردی که پا به جهان گذاشته روزی در حال تعمید دادن مردم بود و میبینه که مردی توی صفی داده مرد جوانی مثل خودش وقتی یهیا ایسا رو میبینه ایسا میگه میخوام از دست تو تعمید بگیرم و یهیا سعی میکنه مانع او بشه و به او میگه که این منم که باید از تو تعمید بگیرم و ایسا در پاسخ میگه نه ما باید پارسایی رو به کمال تحقق بخشیم یهیا حالا تو منو تعمید بده. و یحیی او رو تعمید میده و وقتی این کار رو میکنه روح خدا به شکل کبوتری بر عیسی میاد و یحیی شهادت میده و میگه کسی که به من معموریت داد تا موعظه کنم به من گفت که روزی من مردم رو تعمید خواهم داد و روح خدا به شکل کبوتری بر کسی خواهد آمد وقتی این اتفاق بیفته من خواهم فهمید که اون شخص پسر خدا بوده یحیی میگه این استان کسی که در گفتم که بعد از من مردی میآید.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 به من گفته بود هرگاه ببینی که روح بر کسی نازل شود و بر او قرار گیرد بدان که او همان کسی است که به روح القدس تعمید می دهد. من این را دیدم و شهادت می دهم که او پسر خداست. عیسی پس از تعمید فورا از آب بیرون آمد. آنگاه آسمان گشوده شد و او روح خدا را دید که مانند کبوتری نازل شده به سوی او میآید و صدایی از آسمان شنیده شد که می گفت این است پسر محبوب من که از او خوشنودم. اهمیت تعمید عیسی در چی بود؟ تعمید او یکی از مهمترین رویدادهای زندگی مسیح بود. تعمید عیسی مثل تعمید من و شما نبود. تعمید عیسی افتتاحیه موعظه او برای خدمت عمومیش بود. وقتی کسی به عنوان رئیس جمهور کشوری انتخاب میشه، ما مراسم معارفه او را میبینیم در این مراسم معارفه، رئیس جمهور سخنرانی افتتاحی ایراد میکنه عیسی هم خدمتش را با تعمید افتتاح کرد اما سخنگو خدای قادر مطلق بود نطق افتتاحیه بسیار کوتاه بود خدا فقط گفت این از پسر محبوب من که از او خوشنودم این نطق ندغ ای بود که قبل از شروع خدمت عیسی ایراد شد الهیدانان دوست دارند که به طور مفصلی در مورد مفهوم تعمید عیسی صحبت کنند الاهیدانان اغلب با هم توافق ندارند اما زیاد به این چیزها اهمیت ندید. دکترها هم زیاد با هم توافق ندارند. سیاستمداران هم با هم توافق ندارند. روانشناسان هم با هم توافق ندارند. هیچ کسی با هم توافق نداره. پس زیاد تحت تاثیر اینها قرار نگیرید که چرا الهیدانان توافق ندارند. بعضی ها میگن وقتی عیسی تعمید گرفت خدا پرده ای رو کنار زد و به ما مسیحی رو نشون داد که قبلا در زندگی عیسی وجود داشت. ببینید ایسا امانوئیل یا خدا با ما بود خب ایسا کی خدا با ما شد انسانیت او کجا تموم شد و الوهیت او از کجا آغاز شد او در ذات هم انسان بود و هم خود خدا بود اهمیت تعمید ایسا در واقع اینه این مراسم معارفه او بود ایسا داشت می که سه سال خدمت عمومیش رو که رسولان در انجیل با ما از آن صحبت کردند آغاز کنه این سه سال بیشتر از بقیه سالهای عمر عیسی مورد علاقه اونها بود سه سال خدمت عمومی او با تعمیدش آغاز شد به دنبال تعمید عیسی، یکی دیگر از وقایع مهم زندگی مسیح رو میبینیم عیسی به بیابان میره و توسط شیطان وسوسه میشه ما میخونیم که روح او رو به بیابان برد تا شیطان وسوسه کند. شیطان او را سه بار وسوسه کرد شیطان در سه مرحله به عیسی حمله کرد قبل از هر چیز وسوسه کننده به او گفت اگر تو پسر خدا هستی به این سنگ ها به نان بشوند. عیسی در جواب گفت کتاب مقدس میفرماید زندگی انسان فقط بسته به نان نیست بلکه به هر کلمه ای که خدا میفرماید. این اولین وسوسه ی ای ایسا بود. بعد ابلیس او را به بیت المقدس برده بر روی کنگره معبد بزرگ قرار داد و به او گفت اگر تو پسر خدا هستی خود را از اینجا به پایین بی زیرا که کتاب مقدس می او به فرشتگان خود فرمان خواهد داد و آنان تو را بر روی دست خواهند برد مبادا پایت به سنگی بخورد عیسی جواب داد کتاب مقدس همچنین می فرماید خداوند خدای خود را امتحان نکن بار دیگر ابلیس او را بر بالای کوه بسیار بلندی برد و تمامی ممالک جهان و شکوه و جلال اونها را به او نشان داد و گفت اگر پیش من سجده کنی و مرا به پرستی همه اینها را به تو خواهم داد عیسی به او فرمود دور شو ای شیطان کتاب مقدس میفرماید باید خداوند خدای خود را به پرستی و فقط او را خدمت نمایی انگاه بلیس ایسا را ترک نمود و فرشتگان آمده او را خدمت کردند. اهمیت وسوسه ایسا در بیابان چی هست؟ خب اول از همه لازمه ببینیم که وسوسه ایسای مسیح در بیابان نبرد دیگری بین پسر خدا و شیطان بود. این اولین باری نبود که اونها درگیر شدند. وقتی احت قدیم رو بررسی کردیم باید یادتون باشه که در پیدایش باب سه با مردی آشنا شدیم که به اون پسر خدا می گفتن. در آخرین آیه لغا باب سه جایی که لغا نسب عیسی را رو به شما میده تا به آدم به عقب برمیگرده و آدم و پسر خدا رو معرفی میکنه. آدم و عیسی هر دو پسر خدا خانده شدند اونها تنها کسانی هستند که کتاب مقدس از اونها به عنوان پسر خدا یاد کرده. آدم یعنی انسان اون آدم در پیدایش سه پسر خدا بود. خدا انسان رو بسرشت و اون انسان همونی بود که خدا میخواست باشه. به اون انسان پسر خدا گفته شد و نامش آدم بود. خدا آدم رو در باغ عدم قرار داد و شیطان او رو وسوسه کرد. آدم در نبرد با شیطان شکست خورد. و از اون موقع به بعد ما داریم تاوان اون شکست رو می پردازیم. اولین پسر خدا در آزمون وسوسه شکست خورد. دکتر جی کمپل مورگان معتقده که وقتی ما به اناجیل می رسیم در مورد وسوسه ایسا در بیابان می خونیم. در واقع نبرد بازگشت بین شیطان و انسان رو مطالعه می کنیم. دکتر جی کمپل مورگان معتقده که وقتی ما به اناجیل می رسیم و در مورد وسوسه ایسا در بیابان می خونیم در واقع نبرد بازگشت بین شیطان و انسان را مطالعه می کنیم. وقتی که یک مسابقه جهانی استثنایی بکس سنگین وزن برگزار میشه و نبرد خوبی بین این دو برگزار میشه اولین چیزی که برگزار کنندگان مسابقه بهش فکر کنن بازی برگشت هست و میگن بذارید بازی برگشت هم داشته باشیم اونها میدونند که میتونن بازی رو ترتیب بدن و میلیون ها نفر رو به مقابل تلویزیون ها بکشن. اگر اون دو بازیکن دوباره با هم نبرد کنن، علاقمندان به مسابقه بکس بازی برگشتی هم می‌بینند. مخصوصا اگر بازیکن محبوب اونها در بازی رفت شکست خورده باشه. به قول مورگان، وسوسه در بیابان که در اناجيل می‌خونیم، بزرگترین بازی برگشت هست. عیسی مهاجم بازی هست. او حمله میکنه. او به بیابان میره جایی که شیطان در اونجا حضور داره و در صدد هست که مسابقه برگشتش رو با شیطان انجام بده. به اعتقاد مرگان اگر شیطان میدونست در اون نبرد بازنده خواهد شد، به هر طریقی که میتونست از اون مسابقه اجتناب میکرد. شیطان این پسر خدا، این آدم رو میشناسه که بهش در کتاب مقدس آدم آخر گفته شده و فکر میکنه که در این مسابقه هم پیروز خواهد شد. بیایید ببینیم که کی مسابقه را خواهد برد. بیایید بپرسیم این چی میگه، مفهومش چی هست و مفهومش برای من چی هست و از همه مهمتر این برای خدا چه مفهومی داره؟ در زندگی امروز من و شما چه مفهومی داره؟ در باب چهارم می میخونیم که عیسی به بیابان رفت و اونجا توسط شیطان وسوسه شد. وقتی شیطان عیسی را وسوسه کرد، ابتدا عیسی رو در این مورد وسوسه کرد. ایسا چهل شبان روز بود که روزه گرفته بود. بعضی ها چهل روز روزه میگیرند اما وقتی خورشید غروب کرد اونها شامشون رو میخورند. این روزه چهل روزه با معیارهای خودش هست اما ملاحظه کنید که عیسی چهل شبانه روز روزه گرفته بود این حد نهایی تحمل انسان رو برای گرسنگی نشون میده عیسی وقتی شیطان به او گفت اگر پسر خدا هستی به این سنگ ها بگو نان بشوند خیلی گرسنه بود پاسخ عیسی چی بود عیسی گفت نوشته شده است اولین کلمات عیسی که در انجیل به طور خلاصه نوشته شده از سه کلمه نوشته شده است تشکیل یافته. جالبه که ملاحظه کنید عیسی با نقل از کتاب مقدس به وسوسه کننده پاسخ میده. وسوسه آدم و هوا در باب سه پیدایش و وسوسه عیسی در اناجیل نکات موازی جالبی دارند. اگر باب سوم پیدایش رو بخونید و بفهمید که واقعاً چی میگه وسوسه اساساً این بوده. نیازهای جسمانی رو در اولویت قرار بدید و نیازهای روحانی رو در مرحله بعدی. خدا انسان رو به شکل انسان بیرونی و درونی خلق کرده. در باب دوم پیدایش میخونیم که خدا قدری از خاک زمین رو گرفت و در اون خاک نفس حیاتش رو دمید و انسان موجودی زنده شد. در نتیجه روشی که خدا انسان رو خلق کرد انسان تشکیل شده از انسانی بیرونی و انسانی درونی در سرتاسر سر کتاب مقدس می بینیم که به ما می گه انسان درونی مهمترین بُعد انسانی هست چون انسان درونی ابدی است بُعد درونی انسان به شباهت و شکل خدا خلق شده بنابراین در کتاب مقدس به انسان گفته شده که به بُعد درونی ارزش قائل بشه به انسان تعلیم داده شده که به انسان درونی و روحانی بیشتر از انسان بیرونی و مادی و جسمی ارزش قائل بشه اساس وسوسه ایسا همون وسوسه ای بود که آدم و حوا رو در بهشت از پا در آورد اما اینجا در انجیل این پسر خدا فریب نمیخوره عیسی به همون وسوسه شیطان اینطور پاسخ میده نوشته شده است اگر انسان واقعا میخواد زندگی کنه تنها با نان و فقط با ارزا کردن نیازهای جسمانی نمیتونه زندگی کنه باید به هر کلامی که از دهان خدا صادر میشه نگاه کنه و درک کنه و از اونها اطاعت کنه اینجوری میتونه زندگی کنه در پیدایش سه شیطان سوالی مطرح کرد آیا خدا حقیقتا گفته است؟ آدم و هوا جواب دادن بله خدا گفته شیطان اینطور داد این حقیقت نداره ببینید کلام خدا زیر سوال رفته کلام خدا به چالش کشیده شده از کلام خدا اطاعت نشده و چون انسان به کلام خدا شک میکنه سقوط میکنه مسئله اینجا اینه اگر میخواید زندگی کنید کلام خدا به شما نشون میده که چطور زندگی کنید. به این دلیل که میگیم مفهوم کتاب مقدس زندگی هست و زندگی به شما کمک میکنه کتاب مقدس رو درک کنید. هرچه بیشتر کتاب مقدس رو درک کنید زندگی رو بیشتر درک خواهید کرد و هرچه بیشتر زندگی رو درک کنید کتاب مقدس رو بیشتر درک خواهید کرد. کتاب مقدس و زندگی به هم دیگر نور میتابوند هدف کتاب مقدس اینه که ما بتونیم زندگی کنیم و این روشی بود که عیسی به اولین وسوسه پاسخ داد عیسی چالشی پیش رو داشت و اگه بتونیم بهش فکر کنیم چالش او این بود بالاخره او از یک زن به دنیا آمده بود او برادران و خواهرانی داشت در جای کوچکی به نام ناصره زندگی میکرد و مردم او را می شناختن. عیسی یه روز میخواست بلند شه و بگه من خدا در بین شما هستم، من شبیه انسان هستم، اما فقط انسان نیستم، من خدا در جسم انسان هستم، فرض کنید یه روز برادر شما برگرده و بگه خبرهای مهیجی برات دارم، سی سال بود که این رازت مخفی کرده بودم، اما حالا میخوام اینو بهت بگم، من خدا هستم، خب شما احتمالا غرق گریه میشید و سراغ شبانتون میرید و میگید او باید در بیمارستان روانی بستری بشه، گریه میکنید و میگید برادر بیچاره من دیوانه شده عیسی با این چالش روبرو بود چطور میخواست به مردم بگه که من خدا هستم دومین روشی که شیطان عیسی رو وسوسه کرد یک چنین چیزی بود به او میگه من میگم که چیکار کنی به معبد برو و به مرتفعترین جای معبد در اورشلیم برو اونجا بر بالای معبد بایست مردم زیادی جمع خواهند شد وقتی کسی میگه میخوام بپرم معمولا جمعیت زیادی جمع میشن وقتی جوان بودم با شبان موسنی آشنا شدم که میگفت اگر میخواهید جمعیت انبوهی رو به کلیسا بکشونید فقط اعلام کنید که ساعت هفت و سی دقیقه روز یکشنبه کسی رو اینجا دار خواهند زد و بعد جمعیت انبوهی رو اینجا خواهید دید اما اونجا کی خواهد بود کسانی اونجا خواهند بود که شما احتمالاً نمیخواهید عضو کلیساتون باشند اما جمعیت انبوهی خواهید داشت شیطان به عیسی گفت به بالاترین قسمت معبد برو و بپر قبل از اینکه به زمین برسی کتاب مقدس میگه نوشته شده است که فرشتگان تو را بر دستهایشان خواهند گرفت مبادا پایت به سنگی برخورد در مضمور 91 11 و 12 ملاحظه میکنید که شیطان هم میتونه از کتاب مقدس نقل قول کنه اینجا باز هم عیسی به وسیله کلام خدا پاسخ میده و میگه نوشته شده است خداوند خدای خود را می ما. هرگز یادم نمیره که وقتی کوچکترین دخترمون را فرستادیم که به دانشگاه بره او میخواست که زبان بخونه به عنوان دانشجوی سال اولی قرار شد آلمانی، فرانسه و عبری بخونه وقتی اسم او رو در دانشگاه نوشتیم پیش خودم فکر کردم آیا میشه که ما به مسئول دپارتمان زبان بگیم ما والدین این دختر زیبا هستیم و او نور چشمی ماست و میخواهیم که چیزی در مورد او بدونید. او دوست نداره امتحان بده. در واقع امتحان او را عصبی میکنه، او را ناراحت میکنه. بنابراین از شما میخوایم که تا روزی که او توی این دانشگاه هست از او امتحان نگیرید. آیا فکر میکنید که اگر این رو میگفتیم او را میپذیرفتند؟ فرض کنید که مثلا ما بهش میگفتیم که او در درس زبان آلمانی بسیار قوی هست او پنج سال آلمانی خونده. ما میخوایم سرپرست دپارتمان زبان رو ببینیم. او رو بیارید اینجا تا دخترمون از او امتحان بگیره تا ببینه آیا او صلاحیت تدریس زبان رو داره یا نه آیا فکر میکنید اونها او رو قبول میکردند ببینید چیزی که عیسی به شیطان میگفت این بود وقتی کسی در دانشگاه ایمان ثبت میکنه این صلاحیت رو نداره که خدا رو امتحان کنه این خداست که هر زمان میتونه او رو امتحان کنه سوالهای تستی بین ترم نهایی و هر امتحانی که بخواد خدا هر وقت که بخواد میتونه انسان رو امتحان کنه هر کجا که بخواد و به هر روشی که بخواد چون که این یک دوره آموزش ایمان هست به هر حال انسان حق نداره خدا رو آزمایش کنه این فکر از کجا پیدا شده که ما میتونیم خدا را امتحان کنیم این فکر از کجا پیدا شده که خدا باید چیزی رو به ما ثابت کنه این اساس دومین وسفسه ایسا هست برای درک سومین تلاش شیطان برای را ایسا لازمه که پیامی رو که در سر تا سر کتاب مقدس هست درک کنید. کتاب مقدس به کررات و بارها بر این پیام تاکید کرده که میتونه با این دو کلمه ابراز بشه. اول خدا قرار دادن خدا در اولویت آسون نیست. اما قرار دادن خدا در اولویت چیز پیچیده ای هم نیست. ببینید اگر خدا در اولویته هیچ کس دیگه ای و هیچ چیز دیگه ای نمیتونه در اولویت باشه. سوم این وسوسه شیطان و سومین حملهش علیه عیسی این بود چیز دیگهی غیر از خدا رو در اولویت قرار بده مرا در اولویت قرار بده برای سومین بار عیسی باز هم با کتاب مقدس پاسخ میده و میگه نوشته شده از خداوند خدای خود را بپرست و تنها او را خدمت کن ببینید اگر شما فقط خدا را خدمت کنید نهایتا نمیتونید هیچ کس دیگه را خدمت کنید خداوند شبان منه اگر خداوند شبان منه چطور کس دیگه ای میتونه شبان من باشه؟ چطور زن من میتونه شبان من باشه؟ اگر خداوند شبان منه، والدینم چطور میتونن شبان من باشن؟ حالا اگه من هفت ساله باشم، والدینم شبان من هستن. اما وقتی 28 ساله یا 40 ساله هستم و والدینم میگن به مأموریت خدمتی نرو، وارد خدمت نشو، اینجا سوالی پیش میاد. شبان من کیه؟ آیا شبان من خداست یا والدینم؟ شما این تاکید رو در تعالیم عیسیا میبینید. شما باید فقط او رو خدمت کنید وقتی انجیل رو می‌خونیم میشنویم که عیسی میگه باید منو در اولویت قرار بدید فراتر از تمامی کسانی که در زندگیتون هستن اهمیت من باید خیلی بیشتر از زندگی خودتون باشه باید مهمتر از تمامی دارایی‌های شما باشم باید منو در اولویت قرار بدید این چیزی که عیسی تعلیم داده و به این وسیله شیطان رو مغلوب کرده عیسی گفت اول خدا و تنها او را خدمت کنید. وقتی عیسی در اون سبوت بر شیطان قلبه کرد، ما میخونیم که شیطان تا مدتی او را رها کرد. من معتقدم که شیطان در سرتاسر سر زندگی زمینی عیسی در این بود او رو وسوسه میکرد. به اعتقاد من حملات مداوم، عظیم و بیرحمانه شیطان همیشه بر روی عیسی بوده. اهمیت این واقعه بحرانی مسیح در چیه؟ الهیدانان سوالی میپرسند. او میتونست سقوط کنه؟ وقتی عیسی در بیابان وسوسه میشد آیا خدای پدر از بالکونی در آسمان او رو تماشا میکرد؟ نفسش رو حبس میکرد و میگفت نمیدونم او برنده خواهد شد یا نه؟ انسان اول از احدهش بر نیومد نمیدونم آیا این آدم خواهد توانست یا نه؟ آیا فکر میکنید چنین چیزی بوده؟ نه الهیدانان میگند او نمیتونست شکست بخوره یک در میلیون هم احتمال شکست نداشت. و خب پس سوال دیگه ای پیش میاد چرا او وسوسه شد یادمه که داستانی در مورد پل راههنی که ساخته شده بود میخوندم. برای امتحان کردن اون پل مسئولین راه دو لوکوموتیو رو بر روی پل مقابل هم قرار دادن و اونها رو از ترنها جدا کردن و اجازه دادن اونها بر روی پل به شدت با هم برخورد کنند تا باعث ایجاد لرزش زیادی بشه در حالی که لکوموتیف رانان و مسئولین راه مشغول تماشا بودن، پسر جوانی آستین یکی از مهندسین را گرفت و گفت آیا فکر میکنی این پل سقوط میکنه مهندس به پسر گفت البته که نه بعد پسر جوان که خیلی زرنگ بود دوباره آستین مهندس را کشید و گفت خب برای اثباتش چیکار میتونی بکنی مهندس در حالی که میقرید گفت اثباتش اینه که سقوط نخواهد کرد ببینید این بسیار مهم بود که خدا در ابتدای زندگی و خدمت ناجی ما به ما نشون بده که او نمیتونه شکست بخوره یکی از آیه های آخر در کتاب مقدس درباره عیسی اینطور این میگه ببینید مهیج ترین حقیقت در عهد جدید واقعا اینه این یکی از محبوب ترین دعاهای منه شاید شنیدید که شبان شما هم این جمله رو به کار میبره و شما که منتظر خداوند ما ایسای مسیح هستید تا او در رحمت خود حیات جاویدان به شما عنایت فرماید خود را در محبت خدا نگاه دارید ببینید، مهیج‌ترین حقیقت در عهد جدید واقعا اینه. در رسالات و کتاب اعمال رسولان اینطور اومده. عیسی مسیح زنده است و در واقع بر روی زمین هست. او کجا هست؟ مردان حکیم سوال کردند او کجاست؟ خب جواب این سوال اینه. اگر شما پیرو عیسی مسیح هستید، او در قلب شماست. او در شما زندگی میکنه. آیا نمیدونید که بدن‌های شما معبد عیسی مسیح این جاییه که عیسی مسیح زندگی میکنه. او در شما زندگی میکنه. مسیح در شما تنها امید خدای پرجلال هست. حالا اگر مسیحی که وسوسه شد و نمیتونست شکست بخوره در من زندگی میکنه، آیا میتونه منو از شکست حفظ کنه؟ البته که میتونه. اگر من به او اعتماد کنم و اگر با او راه برم، او میتونه منو از شکست حفظ کنه. به عنوان مثال او میتونه به من و شما نشون بده که چطور در این سه بود وسوسه شیطان به او پاسخ بدیم؟ چون شیطان مرتباً سعی داره به من و شما بگه که بود جسمانی رو در اولویت قرار بدیم و بود روحانی رو در مرحله بعدی. شیطان مرتباً به من و شما میگه توقع نداشته باشید که خدا همیشه شما رو امتحان کنه بلکه شما به امتحان کردن او ادامه بدید. واقعا به او اعتماد نکنید او رو امت این хиله همیشگی شیطانه سومین وسوسه ما رو با دشمن جانمون و دشمن رابطمون با خدا مواجه می‌کنه همه چیز رو به غیر از خدا در اولویت قرار بدید مادرتون رو در اولویت قرار بدید همسرتون رو بچه‌هاتون رو در اولویت قرار بدید هر کسی رو در اولویت قرار بدید رئیستون رو در اولویت قرار بدید شرکتتون رو در اولویت قرار بدید امنیت تون رو در اولویت قرار بدید و هر چیزی رو در اولویت قرار بدید به غیر از خدا. به این ترتیب شیطان بهترین های ما رو که خدا بهمون به داده از ما می‌دوزد. بزرگترین دشمن بهترین ها چیزی خوب هست. شیطان ما رو با چیزی خوب وسوسه می‌کنه. شیطان ما رو با چیزهای خوب وسوسه می‌کنه تا بهترین های خدا رو تجربه نکنیم. خدا می‌خواد که او رو در اولویت قرار بدیم. وقتی او رو در اولویت قرار بدیم خدا بهترین هاش رو به ما خواهد داد. عیسی در انجیل متی ما نشون میده که زندگی بسیار کوتاه و ارزشمندتر از اونه که با چیزی غیر از بهترین های خدا اون رو صرف کنیم. یعنی در راه رفتنمون با او ما نباید هیچ چیز رو به غیر از خدا در اولویت قرار بدیم. به اعتقاد من اهمیت وسواسی عیسی در بیابانینه. شما رو با این سوال تنها میذارم. آیا عیسی رو در زندگیتون در اولویت قرار دادید؟ او شایسته هست که در صدر زندگی شما قرار بگیره و میخواد که شخص اول زندگی شما باشه. اما خودش رو تحمیل نمیکنه. او بر در قلبتون میسته و در میزنه. آیا او رو دعوت میکنید که وارد بشه و در صدر زندگیتون قرار بگیره؟ دانشجویان عزیز دعای ما اینه که شما او رو در صدر زندگی خودتون قرار بدین و این درس ها به شما کمک کنن که در ایمانتون رشد کنید و قوی تر بشید. چقیقت شگفتانگیزی که بدونید قدرت خدا در دسترس شما هست که مانع شکسته شما بشه. تا برنامه بعدی باشد که قوت قیام او که به شما حیات تازه بخشیده شما را از تمامی شریرها حفظ کنه و در مقابل دشمن جانتون از شما محافظت کنه. آمین.